تنگی های نقاش خیابانه 48 اثر جی دی سالینجر ترجمه احمد گلشیری با صدای آرمان سلطانزاده. کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس. استان اول یک روز خوش برای مازماهی 97 تبلیغاتچی نیویورکی توی هتل بودند و خطوط تلفنی راه دور را چنان در اختیار گرفته بودند که زن جوان اتاق شماره 507 مجبور شد از ظهر تا نزدیکی های ساعت دو نیم به انتظار نوبت بماند اما بیکار ننشست مقاله ای را با عنوان جنس یا سرگرمی است یا جهنم از یک مجله جیبی بانوان خواند شانه و بروس سرش را شست لکه دامن شکلاتی رنگش را پاک کرد جا بلوز ساکسش را جابجا کرد دو تار موی کوتاه خالش را با موچین کند و سرانجام وقتی تلفنچی به اتاقش زنگ زد روی رف پنجره نشسته بود و کار لاک زدن ناخن دست چپش را تمام می کرد از آن زنهایی بود که اعتنایی به زنگ تلفن نمی کنند. انگار تلفن اتاقش از وقتی خودش را شناخته زنگ میزده است. همانطور که تلفن زنگ میزد قرموی کوچک لاکش را پیش برد و هلار ناخن انگشت کوچکش را پررنگتر کرد. سپس در شیشه لاک را گذاشت ایستاد و دست چپش را که لاکهایش خوش نشده بود در هوا تکان داد زیر سیگاری انباشته از تحسیگار را با دستی که لاک هایش شده بود برداشت و به طرف میز اصلی که تلفن رویش بود برد. روی یکی از دو تخت یک شکل و مرتب نشست. حالا زنگ پنجم یا ششم بود و گوشی را برداشت. گفت، الو؟ انگوشتای دست چپش را جدا از هم و دور از پیراهن ابریشمی سفیدش نگه داشته بود. این پیرا هم به جز سر ها تنها چیزی بود که به تن داشت. انگشترهایش توی حمام بود. تلفنچی گفت. با نیویورک صحبت کنین خانم گلاس. زن جوان گفت. متشکرم و روی میز اصلی برای زیر سیگالی جاواز کرد. صدای زنی شنیده شد. میوریل؟ توی زن جوان گوشی رو اندکی از گوشش دور کرد و گفت: بله مامان. حالتون چطوره؟ یه دنیا نگرانت بودم. چرا تلفن نکردی؟ حالت خوبه؟ دیشب و پریشب سعی کردم باتون تماس بگیرم. آخه تلفن اینجا حالت خوبه میوریل؟ دختر زاویه‌ای میان گوشی تلفن و گوشش را بیشتر کرد. خوبم. فقط هوا گرمه. امروز گرمترین روزیه که فلوریدا چرا تلفن نکردی؟ یه دنیا نگرانت زن جوان گفت مامان عزیز من سرم داد نکشین صداتون خوب میاد دیشب دوبار بهتون تلفن کردم یه بار بعد از به پدرت گفتم احتمالا شب تلفن میکنی اما نه مجبور بود حالت خوبه میوریل؟ راستشو به من بگو حالم خوبه خواهش میکنم این حرف رو تکرار نکنین. کی رسیدین؟ نمیدونم. چهارشنبه به صبح زود. کی پشت فرمان بود؟ زن جوان گفت. خودشم اسبانی نشین. خیلی خوب رانندگی کرد. تعجب کردم. اون پشت فرمان بود؟ میوریل. به من قول دادی که... زن جوان میانه حرفش دوید. مامان بهتون که گفتم خیلی خوب رانندگی کرد. راستش رو بخواین، سراسر راه سرعتش کمتر از هشتاد بود. اون عداهایی رو که با درخت درمیاره در میاره تکرار کرد. گفتم که خیلی خوب رانندگی کرد. مامان، بوش کنین، خواهش کردم درست از کنار خط سفید حرکت کنه. بله دیگه، حرفم و زمین نزاشت. کاریو که گفتم کرد، حتی کرد به درختا نگاه نکنه. باور کنین. راستی بابا ماشینو و داد تعمیر کنن؟ نه هنوز چهارصد دلار خرج داره تا فقط ماما سیمور به بابا گفت خرجشو میپردازه جایی نگرانی خب، تا ببینیم رفتارش چطور بود توی ماشین و جاهای دیگه زن جوان گفت خوب بود باز هم تو رو به همون اسم وحشتناک نه حالا چیز تازه از خودش درآورده چی؟ چه فرقی میکنه مامان؟ میوریل، من دلم میخواد بدونم پدرت، زن جوان گفت خیلی خوب، خیلی خوب اسم منو گذاشته بدکاری مقدس سال 1948 و قشقش قش خندید خنددار نیست میوریل اصلا خنددار نیست وحشتناکه راستش گریه آوره وقتی فکرشو میکنم که چطور؟ زن جوان میانه حرفش دوید مادر به حرفم گوش کنین یادتون میاد کتابی رو که از آلمان برام فرستاد میدونین اون, اون مجموعه شعر آلمانیو میگم چیکارش کردم؟ همه چیزامو زیر رو گم نشده زن جوان گفت مطمئنین؟ البته یعنی پیش منه توی اتاق فردیه. خونه ما جا گذاشتی منم جایی پیدا نکردم که چطور مگه؟ میخواد پس بگیره؟ نه، فقط توی ماشین که میومدیم سراغش رو از من گرفت. میخواد بدون خوندم یا نه؟ اگه به زبون آلمانی نیست؟ زن جوان پایش را روی پا انداخت و گفت چرا عزیزم؟ فرقی که نمیکنه حرفش این بود که شعرشو تنها شاعر بزرگ قرن گفته. میگفت باید ترجمه اونو میخریدم و از این حرفا. یا میرفتم اون زبونو یاد میگرفتم. خدا به دور خدا به دور راستی که گریه آوره همینه که میگم پدرت دیشب میگفت زن جوان گفت یه دقیقه سب کنی مامان به سراغ پاکت سیگار که روی رف پنجره بود رفت سیگاری روشن کرد و برگشت سر جایش روی تخت نشست گفت مامان و به سیگار پک زد میوریل به من گوش بده گوش میدم پدرت با دکتر سیبتسکی صحبت کرد زن جوان گفت راستی؟ همه چیزو براش تعریف کرد یعنی خودش گفت تعریف کردم پدرتو که میشناسی نقل درختها، موضوع پنجره اون مزخرفاتی که برای مامان بزرگ درباره باره مردنش سرهم کرد بلایی که سر اکسای قشنگ برموده آورد خلاص همه چیزو زن جوان گفت خب خب، اونم گفته اولا ارتش جرم بزرگی کرده که اون از بیمارستان مرخص کرده. قسم میخورم. قاطعانه به پدرت گفته که احتمال داره، احتمال خیلی زیادی داره که سیمور پاک عقلشو از دست بده. قسم میخورم. زن جوان گفت، اینجا توی هتلی روان پزشک هست. کیه؟ اسمش چیه؟ نمیدونم رایزر یا همچین اسمی؟ خیلی تعریفشو میکنن اسمشو نشنیده بودم خب به هر حال خیلی تعریفشو میکنن میوریل خواهش میکنم بی خیالی و کنار بزار دلمو خیلی برات شور میزنه دیشب پدرت میخواست تلگراف بزنه بیای خونه راستشو بخوای. فعلا که خیال اومدن ندارم مامان بنابراین فکرشو از سرتون بیرون کنین میوریل قسم میخورم دکتر سیویتسکی گفته سیمور ممکنه پاک عقلشو زن جوان گفت من تازه رسیدم اینجا مامان بعد از سالها این اولین باری که اومدم مرخصی بنابراین خیال ندارم به این زودی چمدونم و ببندم بیام خونه اصلا سفر برام خوب نیست تنم طوری از آفتاب سوخته که به زحمت میتونم تکون بخورم تنت خیلی سوخته مگه اون روغن برونزه شدنه که توی کیفت گذاشتم به تنت نمالیدی گذاشتم کناره مالیدم اما تنم سوخت خدا مرگم بده کجای تنت سوخته تمومه تنم عزیزم تموم تنم خدا مرگم بده نمی میرم. بگو ببینم با این روان پزش صحبت کردی؟ زن جوان گفت خب کم و بیش چی گفت؟ وقتی صحبت می کردی سیمار کجا بود؟ توی سالن اوشن پیانو میزد هر دو شبی که اینجا بودیم پیانو زده خب چی گفت؟ ای چیز زیادی نگفت اون سر حرفو باز کرد. دیشب توی بازی بینگو نشسته بودم کنارش از من پرسید: شوهرتون اون آقایی نیست که توی اون اتاق پیانو میزنه؟ گفتم بله. اون وقت از من پرسید: سیمور دچار بیماری چیزی نبوده؟ این شد که من گفتم. چرا این سؤالا کرد؟ زن جوان گفت: نمیدونم مامان. حد میزنم برای اینکه رنگش پریده بود و از این حرفا. به هر حال بعد از بینگو اون خانمش خواهش کردم برم با اونها نوشابه‌ای بخورم. منم رفتم. زنش خیلی جلف بود. یادتون میاد اون لباس شب مسخره ای رو که توی ویترین مغازه باندوید دیدیم؟ همون لباسی که گفتین آدم باید چیزش خیلی خیلی کوچیک. اون لباس سبزرنگ و میگی؟ همونو پوشیده بود. با اون باسن بزرگش. یه ریز از من میپرسید که سیمور با سوزانگلاس که توی خیابون مدیسون چیز داره، کلا داره خیش و قم یا نه. میخوام ببینم اون چی گفت. دکترو میگم. ای حرف زیادی نزد یعنی ما توی نوشگاه بودیم صدا به صدا نمیرسید خب گفتی گفتی که چه بلایی میخواست سر صندلی مامان بزرگ بیاره زن جوان گفت خیر مامان توی جزئیات زیاد باریک نشدم احتمالا دوباره فرصت پیدا میکنم باش حرف بزنم از صبح تا شب توی نوشگاهه نگفت که به نظرش ممکنه اون اینطور بگم خل بشه بلایی سر تو بیاره زن جوان گفت: نه با این سراحت اطلاعات زیادی که از اون ندارن مامان. اینا بعد چیزهایی درباره بچگی آدم بدونن، واسه مزخرفات. گفتم که نمیشد حرف بزنیم. اونجا خیلی سر و صدا بود. خب، کتابی چطوره؟ خوبه، دادم کوچیکش کردن. لباسهای امسال چطوره؟ زن جوان گفت: افتضاح. اما به این آدما میخوره. پرزرگ و برق و از این حرفا اتاقتون چطوره؟ زن جوان گفت خوبه یعنی بد نیست اتاقی که پیش از جنگ گرفته بودیم خالی نبود امسال آدم ها قابل تحمل نیستن کاش کسانی رو که توی سالن غذاخوری کنار ما میشینن میدیدین سر میز کناری انگار از باقی وحش فرار کردن خوب همه جا همینطوره؟ کفش کفشای چطوره؟ خیلی بزرگه بهتون گفتم که خیلی بزرگه میورید یه بار دیگه میپرسم راستی راستی حالت خوبه زن جوان گفت برای سدومین بار بله مامان خیالم نداری بیای خونه خیر مامان پدرت دیشب میگفت که اگه تنهایی جایی رو پیدا کنی بری و مسائل و با خودت حل کنی هزینه سفر تو از جون و دل میپردازه به این ترتیب میتونی عالی سفر کنی ما هر دو فکر کردیم زن جوان گفت خیر ممنونم و پایش رو از روی پا برداشت مامان خرج این تلفن سر به وقتی فکرش میکنم که چطور سراسر جنگ منتظر این پسر بودی یعنی وقتی آدم به زنهای ای مثل شما فکر میکنه زن جوان گفت مادر بهتر گفتگو رو درس بگیریم سیمون هر لحظه ممکنه سر برسه مگه کجاست؟ کنار دریا کنار دریا اونم تنها؟ کنار دریا رفتارش عادیه؟ زن جوان گفت مادر هر طوری از اون حرف میزنیم که انگار دیوونه زنجیریه میوریل من چنین حرفی نزدم خب از حرفاتون اینطور برمیاد میخوام بگم که کارش اینه که اونجا دراز میکشه روپوش هممامشو هم در نمیاره روپوش حمامشو در نمیاره؟ آخه چرا؟ نمیدونم حدس میزنم برای اینکه رنگش خیلی پریده خدا مرگم بده به آفتاب احتیاج داره نمیشه مجبورش کنی؟ زن جوان گفت شما که سیما رو میشناسین و باز پایش رو روی پا انداخت میگه درش یه مشت آدم ابله خالکوبیاشو نگاه کنن اون که خالی نکوبیده توی ارتش خالکوبی کرده؟ زن جوان گفت نه مامان نه عزیزم و از جا بلند شد گوش کنین فردا بهتون تلفن میکنم احتمالا میوریل حالا گوش کن چی میگم زن جوان که سنگینی تنش رو روی پای راستش میانداخت گفت بله مامان هر لحظه‌ای که کاری یا حرفی زد که احمقانه بود به من تلفن کن میفهمی چی میگم صدا و میشنوی مامان من از سیمور نمیترسم میوریل میخوام بهم قول بدی زن جوان گفت خیلی خوب قول میدم خداحافظ مامان بابا رو سلام برسونین گوشی را گذاشت